روشن از پرتو به رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بسری نیست که نیست نازر روی تو صاحب نظران انداری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست عشق غم ماز من ار سرخ بر آمد چه عجب خجل از کرده خود ارددری نیست که نیست تا به دامن ننشیند نسیمش گردی سیل خیز از نظرم رق گذری نیست که نیست تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند با سبا گفت و شنیدم سهری نیست که نیست من از این تاله شوریده برنجم ورنی بهرمند از سر کویت دگری نیست که نیست از حیای لب شیرین تو ای چشمگ نوش غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست مسلحت نیست که از برز برون افتد راز و ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست شیر در بادیه عشق تو رو باغ شود آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست آب چشمم که بر او منت خاک در توست زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست از وجودم قدری نامونشان هست که است ورنه از زعف در اونجا اثری نیست که نیست غیر از این نکته که حافظت و ناخشنوده است در سراپای وجودت هنری نیست که نیست